اوزو بالله السمی العلیم من الشیطان اللین الرجیم اسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام السلام على نبینا و آله خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم و صبح به خیلی ارز میکنم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و از هر گونه بلا و گزندی به دور بحثمون در بحر اولی که خوندیم بحر طویل به انتها رسید و یک قسم رو من باقی گذاشتم که بتونم یه مقداری براتون دوره کنیم و بهر دوم رو در خدمت شما باشیم گفتیم که بهر طویل عبارت است از فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان فعولان مفایلان, فعولان مفایلان, فعولان مفایلان. هشتا تفعيله که از دو تا تفعيله و مفاعیلن تشکیل شد مفتاحش رو هم گفتیم که طویلان لهو بین البهور و زائلو فاعول مفاعیلن فاعولن گفتیم که از زهافات بهش ذهاف تعبز به داخل میشه و اون حذف حرف پنجم ساکنه که فئولن رو فئول لو خواهد کرد و مفایلان رو مفائلن و گفتیم که هر تفئیلهایم که این بهش داخل شه بهش میگن مقبوسه و گفتیم که این زهاف در عروض این بحر لازمه و جاری مجرای علت مگر اینکه بیت بیت مسرع باشه و گفتیم از علتها علت حذف بهش داخل میشه و اون علت حذف هم اینه که می آید و مفایلون رو تبدیل به فعولان میکنه مفایلون رو تبدیل به فعولان میکنه و هر تفعیله که این بهش داخل بشه بهش میگن محصوفه ها در واقع علت حذف حذف سبب خفیفه از آخر تفعیله زرد. فعل ا و حالا رسیدیم به همین تویل محذوف یعنی اونی که علت حذف اونی که علت حذف در ضرب اون واقع شده یعنی هشتمین تفعیلش شده فاعولن کی انجام. اد تویل المحذوف حالا بخونم و ماکان تفعیلت و عروزهی مقبوزه عروزش مقبوزه است پد تا تفعیله صدر بیت نصره اول اینطور میشه فعولان مفایلان فعولان مفایلان تاش این میشه دیگه فعولان مفاعیل فعولان مفایلان مفایلان که این مفایلان محصوفه است تفعیل محضوف و هو ماکان تفعیلت و عروضی مقبوضه مفایلون مگر بیت مسربه باشه که بیت مسربه باشه مفایلون تابع ضرب این قسم خواهد شد الاف البیت المسرب و تفعیلت و ضربه ضربش ضرب شوش فعولون یعنی به جای این که ما بگو مفایلان هشتون داشته باشیم فعولان داریم و تفعیلت و ضربهی محضوفه اما اینجا یه شرط هست و یشترت و فی هازن نوعه انتکونه اتفعیلت و لتی تسبق و تفعیلت از ضربه مقبوزتن دائمون. شرط از تفعیلهی که قبل از تفعیله ضربه تفعیله زرب هشتم هشتون بود قبل از اون تفعیلهی که وجود داره که فعولانه اون مقبوزه باشه یعنی زهاف قبض بهش داخل شده باشه شده باشه فعولو خب پس بنابراین این این این شکل میشه عروزش میشه مفاعلانه یعنی فعولون و مفایلون و ضربش که آخریه آخری یعنی فعولون و اون و آخر اون بشه فعولون محزوفه شرطش اینه که اون آخری که شد فعولون یک قبل از اون که فعولون هست اون بشه فعولون اون بشه فعولو این شرقش. پس بیت این شکل میشه. یعنی یه دونه بیت اینطوریه طوریه فعولان مفایلان فعولان مفایلان مقبوزه فعولان مفایلان فعولو مقبوزه فعولان محزوفه کسی یه دونه بیتش اگر یه دونه بیتش اگر بیت مصرع نباشد وزنش اینطوری میشه فعولان مفائیلون فعولان مفائلون مقبوضه فعولان مفائیلون فعولو مقبوضه فعولان محصوفه این وزنش حالا اگر بیت مصرع باشه چی میشه؟ بیت مسرع باشه عروزش تابه ضربش میشه یعنی عروزش هم به جای که بشه مفائلن میشه فعولون و ما قبلش هم بشه فعولو یعنی انگار اون ضرب کپی میشه در عروز عروز تابه زرب میشه اگر بیت مسرق باشه دیگه الان ما اینو فهمید الا فی البیت و تفعیلت و زربهی فعولن و یشترتو فی هازن نوعه انتکونه التفعیلت و التي تسبق و تفعیلت از ضربه مقبوزتن دائمان نه و قولت متنبی قول آقای متنبی آیا این بیت که الان ما داریم میخونیم بیت مسعود دارد یا ندارد؟ بله دارد همامو قمامو دارد بیت بعدیش جالسن ندارد بخش یعنی بیت مصعرن نیست خب این تقبه اصلی که ما خوندیم بیت اولش باید اینطوری در بیاد فاعول مفاییل فاعول فاولان فاعول مفاییل فاعول فاولان این بیت اولش باید بد بیت دوم باید اینطوری در بیاد فاعول مفاییل فاعول فعول مفائیل فئولو فئولن اینا بیت دوم ش یعنی باید اینتوری در بیا بیت اول بیت مسرعه بیت دوم بیت غیر مسرعه لهو قول المتنبی بخوانیم ارا عكذا کل الملوک همامو وصحلهو رسل ملوک قمامو من برای اینکه وزن شعر درست, در این درست بشه دسور جمعش باشه رسل ولی برای اینکه که وزن شعر درست بشه شعر رو چون میشناسیم عرض گفتیم این که فایداش اینه که شعر رو صحیح بخونیم لذا خوندم رسلل ملوک رسلل ملوک بخونی شعر وزنش خراب میشه و دانت له الدنیا فعصبه جالسا و ایامها فی ما یوریدو قیام و ایامها فی ما یوریدو قیام خب ارائه قل الملوک همامو و سحه رسل الملوک غمامو و له لگ الدنیا فعصب هجا و عیام ها ما یورید و مو این شعر رو متنبی شد موقعی گفته بوده که سیف الدوله داشته بر پادشاه روم پیروز می شده و پادشاه روم یک کسی رو فرستاده بوده و درخواست آتش بس و درخواست مذاکره و صلح میکرد درخواست حالا ببینیم چی میگه اراعه راعه یعنی خوفه یعنی عرف زعه ترسوند اون همزه شمزه استفاده یعنی اخوفه کذا یعنی روعا کذا رو مفعول مطلقه آیا ترسانده از ترساندنی این چنین؟ یعنی این چنین که ما داریم میبینیم از سیف و دوله. آیا ترسانده از ترساندنی این چنین کلن ملوک تمام پادشاهان را همامو پادشاهی بلند مرتبه همام فاعل ارا است کلن ملوک مفعولش کذا هم گفتیم که بوده را و اند کذر روعه این زا یعنی هازا اشاره به روه است. آیا ترسانده است یه چنین ترساندنی همه پادشاهان را پادشاه بزرگی یعنی آیا شما سراغ دارید تو تاریخ یه پادشاهی همه پادشاهان را به وحشت انداخته باشه این چنین همچه چیز سراغ دارید و صح لهو رسل الملوک غمامو صح یعنی بریزه سب لهو برای این غمام رسل الملوک رسولان پادشاهان را فرستادگان را غمام ابر آسمان یعنی ابر آسمان برای او رسولان پادشاهان را میفرسته یعنی چی؟ یعنی رسولان پادشاه ها مثل ابراسمان آسمان بی نهایت همینطوری فرستادگان پادشاهان میان به التماس که آقا ما غلط کردیم دست برداد جنگ نکنیم ما هرچی بخوای میدیم پس آیا سراغ دارید که پادشاهی باشه که همه پادشاهان رو اینطوری ترسونده باشه؟ و آیا دیده اید که عبر آسمان رسولان رو برای پادشاهی ریخته باشه اینطوری؟ یعنی ما میگیم مثل مور و ملخ رسول پادشاهان بیان این میگه مثل عبر آسمان رسول ببارد بر او. و لهو رسل الملوکه تمام بعد توی این میگه و دانت له دنیا دانت یعنی خزعت خاضع شده مطیع شده لهو برای او یعنی برای این پادشاه از دنیا منظور اینجا از دنیا یعنی اهل دنیا، مجاز، به علاقه محلیت مجاز عقلیه دنیا در مقابل او خاضع شده یعنی اهل دنیا همه در مقابلش فرود آوردن همه تسلیمش شدن دانت له دنیا فاسبحاجالسا پس این پادشاه نشسته رو تختش توی حلب تو سیف و دوله تو حلب قشنگ آروم و رو تختش نشسته اسبحجادسن و ایامها فی ما یرید قیامو و حالا که روزگار او قیامون قیام جمع قائمه روزگار به پای وایسته روزهای او ایام او به پای ایستادند فیما یورید یعنی فیما یرید هو در آنچه که او میخواد روزگار داره برای او کارشو انجام میده کار اون چی بوده اینکه دیگران بیان تسلیمش بشن دیگران بیان زیر دستش باشند دیگران به او مالیات پرداخت کنند آخو روزگار این کار میکنه رسولان را همرو فرستاده همشون اومدن دارن میگن آقا میخوای بههت میدیم نوکرتم هستیم خودش رو تخت نشسته جنگم نکرده همه هم روزگار اونها رو به خط کرده برای نوکری این و عیامها فی ما یوریدو قیام. روزگار داره کارش انجام میده و ایامها حاله و دانت له الدنیا روزگار در مقابلش مردم روزگار خاض شدن پس او نشسته و روزگار داره ایام یعنی دوران ایام و ایام این دنیا دوران این دنیا قیامون جمع قائمه. به پای سادگان هستند فی یرید در آنچه که او بخواد فی مایوریید و قیام. خب الان ما اینو رو کنیم ببینیم. آرام کلل کل ملوك تمام وساحل آن روزل ملوك تمام خوب این بیت مساله بود با از عروزش تابع زر بشه نگاه کنی چی در ورد فاوله این مهم نیست این مطبوزه باشه تو هش مهم نیست فعول و سالم است. فعول و فعولون اینجا ببین عروض تابع ضربه. مفایلان آخر شده فعولون اون قبلش هم گفتیم شرطش اینه که مقبوزه بیاد مقبوزه اومده یعنی اینان کپی شده ضرب برای عروض چون بیت سر رهی فعول و فعولون و سحر فاوله باشی مخدوزه باشه یا سالمه باشه فرقی نمیکنه لهو رسلل مفایلن الان ببین اگه ما رسل میخوندی نمیشد دیگه اصلا وزن چه خراب میشد در نمیآمد مفایلن و صح لهو رسلل ملوکه فاوله قمامو فاولن آیا شما نمیبینید که ضرب و عروز دو دوتا عین هم شدند فعولون و شرطشون که قبلش اینه که فعولو باشد مقبوزه عینا هست بر و دانت لهد دنیا فعص به هجالسا و جالسن فاسبح جلسا شما میبینید دیگه و دانت فعول سالم است له دنیا مفاعیلن فاسب فعول این اینجا لازم نیست این میتونست فعولان بیانیم غیر لازمه اما این لازمه چون گفتیم که عروض این بهر همیشه مقبوس است هجالسن الان و ایا فعولون محافیما مفایلون یا ریدو فعولا این لازمه چون گفتیم قبل از ضربش باید مقبوضهش فاعولو دیامو فاعول حالا نگاه کنی چی میگه الملاحظه هنا اون چیزی که ما اینجا میبینیم اینه ان تفعیله على عروز مقبوزه تفعیل عروز مقبوضه است و ان از الضرب محذوف است بله الان تو همین بیت میبینید که عروزش مفاعلن زربش فعولان و, و ما قبلها ها میخوره به تفعیل ضرب و آنچه که ما قبل تفعیل زربه است میبینید فعولو یوریتو میگیم خب بچه تو بیت اولی نیست میگیم ولکونل بیت اول مسررن چون بیت اول بیت مسرر بوده اشبهد تفعیلتا تفعیله بایده نیست اشبهد تفعیلتا على عروض و ما قبلها تفعیلتای از ضرب و ما قبلها چون بیت اول بیت مسرع بوده اشبه تفعیلتا مولانا چه تفعیلتا تفعیلتا عل عروض و ما قبلها چون بیت اول بیت مسرع بوده های عروز و ما قبلش یعنی سوم و چهارم دشبهت تفعیلتی از ضرب و ما ها یعنی هفته ما هشته پابه اونها شده تموم شد کل بحر رو خوندیم خلاصه شد ما سخت خوندیم همین سخت خلاصه بحر طویل هاز البحر و یعتی تامن دائما، همیشه تامنه مجزو و مشتور و منحوک نداره و تفعیلت و عروزه مقبوزتون دائمن تفعیله عروزش هم مقبوزه است دائما همیشه مفاعیلن الا فی بیت المسرب مگر بیت مسرب بشه که تابع سر بشه و له ثلاثت انوا تن تعین به تفعیلت زر بگی سه نوع داره که از روی زربش میشناسیم زربش باعث شده که سنو بشه چرا چون اروز همیشه مَقْبوظ است یه نوعه و نه روز سه‌شنبه و پنج‌شنبه به تفعیلت ضرب فقط تکون و این تفعیل ضرب الا وزن مفایلن اگه بر وزن مفایلن باشه خب بهش میگیم چی؟ طویل سهی طویل تام صحیح و اگه مفایلن باشه بهش میگیم چی؟ تویل تام مَقْبوظ و اگه فعولان باشه چی بشه میگیم طویله تام محضوف سبونی اما یه آخری شر شرط داشت که فقط ضربش نبود که فعولان میشد محضوفه میشد باید قبل از اون هم که تفعیله هفتم باشه مقبوضه باشه یعنی به جای فعولان فعولو باشه ولی اخیرتو لا تحتیه الا و ما قبلها مقبوضتون داشت شد این آخری که بشه ضربش فاعول نمیشه مگر اینکه اون تفعیل ما قبلش هم مغزو باشه فاعول فاعول همین الان خونید و تدخله من ال علل علت داخل میشه به این بحر طویل از علل علت الحذف درست شو ها بقیه بنویسید و تدخله من ال علل و من از زهافات و من از زهافات زهاف و که ادخله من ال ال علت از علت ها فقط علت حسب به داخل میشه و من از زهافات زهاف القبض و زهافات هم زهاف قبض بهش داخل میشه دیگه زهات دیگه بهش داخل نمیشه و از زهافات هم زهاف قرص بشته اونجا چیزی نداشتی یک بهر به طور کامل و جامع برای شما خونده شد و فقط حفظش برای شما باقی مانده خب بریم سر بحر دوم بحر دوم درس امروز ماست بحر بسیت بحر بسیت بحر بسیت بحر, بحر دوم ماست مفتاح البحر مفتاح کلید این بحر که برای حفظ کردن به شما داده میشه اینه انل بسیته لدیه یبستو لعملو انل بسیته لدیه یبستو لعملو مستفعلن, فاعلن. مستفعلن فاعلن. فاعلن فاعلو چه بگی فاعلو چه بگی؟ فعیلون یکیست که حالا ما فعیلون میگیم که با گوش شما بشن مثل مفعیلون توی ویتغف فعیلون مفعیلون فعیلون مفعیلون گفتش این مفعیلون یعنی همون مفعیلون بنویسید یکی در میاد. لو و لون یه سبب خفیفه حین همه این نلبسیت لداییه یوبست العمل مستفعل مستفعلون مستفعل مستفعلون فاعلو. این نلبسیت همانا بهره بسیت در نزد او در پیشگاه او یوبست العمل پهن می شود همه ی آرزوها ال عمل دارد. همه خواسته ها همه آرزو ها میشه در پیشگاه بحر بسیط یعنی بحر بسیط این است که خیلی استعمال داره هر کسی هر گونه خواسته و آرزوی داره این در بحر بسیط برای او پیدا میشه این لده وسیطه لدهیه یبسطل عملو مستفعلون فائلون مستفعلون فائلون لدهیه متعلق به یوبستوست و العمل نایب فائل یوبستوست این لدهیه یوبستو لعملو میشه خبر اند البسیطم که اسمش خب میگه و و و منل ممزوجت من تفیلت این مختلف تیید خما و این از این جهت مثل بحر تیله این بهر از دو تا تفعیله مختلف که در کنار هم ممزود شدند تشکیل شده. اون از فعولون و مفیلان این از مستف و فائان. اون ه تا بود این هم 8 تا موفق اون موفق اون موفق اون موفق اون موفق بود. این مصطف الون فائیلون مصطف الون فائیلون مصطف الون از این جهت هم و هوای من لعبور الممزوجة من تفعیلتین تین هما مصطف الون و فائیلون. و یه تعلف اصله من سمانی تفعیلاتن الان النحو تاد و تشکیل میشه در اصل از هشت تفعیله به شکلی که شما میبینید هشت تفعیله این شکلی مستفعلون فاعلن مستفعلون فاعلن مستفعلون فاعلن مستفعلون فائلون, مصطفعلون، فائلون،, مصطفعلون، فائلون،, فائلون،, مصطفعلون، فائلون. خب. اما تغییراتی که توی این بحر پیدا میشه توی اون یه علت میامد علت حذف یه ذهاف میامد زهاف قبض درست شو تو این چی تو این سه تاست خلاص یک ذهاف الخبن زهاف و اسم زهافش عبد شده اون زهاف قبض تو بحر تغییر بود این زهاف زهاف خبنه به اون تفعیله ای هم که داخل بشه میگن مخبونه درست شد؟ زهاف فل و هو هز فول حرفه از سانی از ساکنه منت تفعیلته و اون حذف حرف دوم ساکن از تفعیل است حذف حرف دوم ساکن از تفعیل درست شد. و اینا میات خود حالا نگاه کن مس مص یعنی اون سین حذف حرف دوم ساکن از تفعیل و اینا ملحق الان مس مص مصطف علان یو غیر حایلان مفایلان الان رو میکنه مفایلان پس اگر یه موقع دیدید شده مفایلان جای مصطف تعجب نکنید این مخبونه است صحاف خبرش داشته و این نماییت خلوه علا او و هست میکنه علف فاعلن میشه فایلان علا خود همون کلید وحر رو ببینید إن لبسیطه لديه یبسطل عملو مستفعل فاعل مستفعل فائلون این فائلون یا فعلو درست این الان مخبون است درست شد؟ مخبون است و این دمایت خلو علا فائلون غیر غایلا و یقال تفیلت لتی یلحب و ها از زحاف و مخبونه به این تفعیلهی که این زحاف بهش داخل بشه میگن مخبونه پس مخبونه چیکار کار میکنه؟ دومین حرف ساکن رو حذف میکنه مستفعلن رو میکنه مفاعلون فاعلون رو میکنه فعلون این تا اینجا این زحاف اول نوفان زهاف و تی زهاف و هو هزف و حرف عرابه از ساکن منت تفعیل هزف حرف چهارم ساکن از تفعیل هزف حرف چهارم ساکن از تفعیل این هم زهاف ها و هی نمایل یل حرف و موقعی که لاحق میشه به ت مستفعل حرف چهارم ساکنشون که نشون می‌فهی موس تفعلون. یو غیر رعایل موس تعلون و یو قاله تفیلاتی که یالها و ها از اونی که این بهش داخل بشه، بهش میگن متویه. پس به مستفعلون داخل میشه و اونو میکنه مفتعلون ممکن شما ها کنید چرا به فایلون داخل نشد چون فایلون اصلا چهارمین حرف ساکن بگید نداره چهارمین حرفش متحرکه فا ای لو, لو. پس اصلا به ایزغافتی ای به تفعیل فایلون فا ها داخل نمیتونه بشه به اونی که داخل میشه به اونی که داخل میشه عبارت است از مستفعلن و اونو تبدیلش میکنه به مفتعل سه اینم راحت بود علت القطع علت قطعه علت قطع اونجا علت حذف داخل میشد میشد محذوفه تو بحر طویل اینجا علت قطع داخل میشه کلا به اونی که داخلشه میگن مقطوعه علت الگت و هیه حذف ال حرف الاخیر از ساکن من الوتد المجموع حذف حرف آخر ساکن از وتد مجموع یعنی الان وتد مجموع یه یو یه خط تیره میشه سه تا حرف چون خط تیره یه متحرک ساکن حذف حرف آخر ساکن اون رو حذف کنی میشه دو تا یو خب بعد و تسکین و ما قبله هو. اون متحرکی که میماند اون رو ساکنش میکنه او موقع تبدیل میشه به یه یو و یه ساکن و یه یو یه ساکن میشه یه خط تیره میشه یه سبب یعنی اینطور طور میشه وتد مجموع رو تبدیل میکنه به سبب خفیف وتد مجموع رو که یه دونه یو یه خط تیره است تبدیل میکنه به یه خط تیره سبب خفیف علت و یه حذف و حرف اخیره از ساکنه من الوتد المجموع و تسکین و حذف و تسکین و ما حالا نگاه کنید این چون علت و علت به عروز زرد داخل میشه و این زرد و عروزش فاعلانه الان نگاه کنی فا ایلون. اون فاعلان اون اعلان نیو و یه خط تیره رو برمیداره داره یه خط تیره میذاره یعنی میشه دو تا خط تیره خب دو تا خط تیره چی میشه فعلان فاعلان تبدیل میشه به فعلان تغییر و حالا فعلان این یک حالا میگه که وهینما نما تلق و مصطف علته علت که فقط به ضرب و عروض داخل میشه زرب و عروض این که مصطف نمیشه که داخل بشه میگه خب اگر اومد و یه موقعی این بیت کتاحتر شد یعنی تام نبود شد مثلا مجزو اگه بشه مجزو زرب و عروضش میشه مصطف علون خب اون موقع میتونه بهش داخل شد دیگه وهینما اما وحین اما تلحق و مصطفعلون اگه مصطفعلون داخل بشه و ستا اون وتد مجمور و اون یو و خط تیره رو بر میداره یه خط تیره میاره میشه ستا خط تیره میشه مفعولون تغیر و حائل مفعولون. و یقال لتفعیلت اللتی تلحقها و حاها زهل مقتول و به اون تفعیلهی که این بهش داخل بشه بهش میگن چی؟ مقتوعه بهش میگن مقطوعه خب حالا دقت کنید ما یه مطلبی رو اینجا به شما گفتیم بودیم علت قطع که میاد و تد مجمور تبدیل به سبب خفیف میکنه درست شد؟ این رو گفتیم که گفتیم که در واقع تیزیهش هم میشه که میاد اون ساکن آخر هست میکنه بعد ما قبلش که مترکه اون ساکن میکنه اون وطده مجموع شه. یه متحرکه ساکن تبدیل میشه به یه سبب خفید گفتیم این اگه به داخل بشه که توی تام فاعلان ضربه میشه فاعلان و اگر در غیر تام مستفعلان ضرب شده باشه به مصطف الان داخل بشه میشه مفعول لط یعنی وتد مجموع رو تبدیل به سبب خفیف میکنی میشه مفعول حالا با توجه به این مطلب که دیدید نگاه کنید و انواع این بحر رو و بحر اون فقط بحرش بحر تام بود این نه انراه و بحر البسیط یعنی بحر البسیط تامن یعنی هشتا رو داره هر هشتا هست مصطف علون فاقلون مصطف علون فاقلون مصطف علون فاقلون هر هشتا هست و مجزوه مجزو که بشه یه جز از صدر یه جز از عروض میفته یعنی اینجوری میشه مصطف علن فاعل مصطف علن مصطف علن فاعل مصطف درست شو تام من و مجزور تام میاد مجزور می شه لغز ذکر ال عروضیون له انواعا متعددا عروزی ها براش انواع متعددی ذکر کردن قلیلت الاستعمال یعنی این انواع متعدد این صفته رو خیلی استعمالش کمه یعنی مثلا یه نوازه کردن شما ده تا دیوان رو که زیرا رو میکنی یه قصیده دوتا قصیده ممکنه پیدا کن بایده نداره حفظ کردن یاد گرفتنش برای کسایی که بخوان روز خیلی تخصصی بخوانند و چیا غیره اینجور ممکنه بتونن کار کنن ولی نه به درب ماها نمیخورد تازه اگر ما یه موقع این اصلی شد. بیشترین مثلا فرشون یه دیوان متنبی رو بررسی کنید یه قصیده اینطوری داشته شد. دو دوتا قصیده از این نوع قلیلتال استعمال چیز نداره اگه برخوردن کردیم خب میریم مطالعه میکنم و پیدا شد اما اصلی نه که اگر شما صد تا قصیده داری که تو بهره بسیده مثلا هفتت تاش از یه نوعه بیست تاش از یه نوعه خب این ها رو باید حفظ کرد لذا به خاطر همین که انواع متعددی ذکر کردن که استعمالش کمه فایلنها سنکتفی به ذکر انواع شاععت ها با اونهایی رو که شایع هست و عمده هست و بیشتر استفاده شده اونها رو برای شما ذکر میکنه و شما هم اونها رو باید یاد بگیرید و یادگیری اونها کفایت میکنه حالا اگر یه موقعی در جایی ندرتن به اون مورد استعمال نادری برخورد کردید خب مراجعه که بکنید چون بلدید پیدا میکنید و میفهمید ولی خیلی خیلی کم چون اون نادرها اینجا دیگه اگه قرار باشه حفظ بشه چیزی باقی نمیگذار اصلا انسان نمیتونه این رو این همه رو حفظ کنه. فل... فل لذا فهننا سنکتفی به ذکر لنواه من منها و یک نگاه کنید بسیط تام به مخبون این یک بسیط تام به مقتوب این دو این مال تامه داد شد بسیط مجزوع که بهش میگن مخلع البسیط یعنی یکی شرف داده این قسمه سوم و تمام میشه. یعنی دوتا تام میخونیم و یه دونه بگید مجسوب. دو تا تام بمونم یکیش تام مخبونه دو و دیگری تامه بگید مقتوعه تام، مخبون و تام مقطوع خبن اگر یادتون باشه زهاف بود حالا اینجا داخل چه ببینیم چه چونی شده که تونسته یک قسم درست کنه چون زهاف گفتیم لازم و نیست ولی اینجا ظاهر باید لازم و شده باشه که تونسته باشه یک قسم درست کنه وسیط تام مخبون نگاه کنید و ما ماکانت تفعیلت و عروزهی مخبونه عروزش مخبون است آیا توی تام دوم که پایین گفته اونجا هم عروز مخبون است میگه بله پایین نگاه کنید هوه ماکانت تفعیلت و عروزهی مخبونه پس وقتی تفعیلت عروزهی مخبونه است درست شو. ما از طریق عروض نمیتونیم تام بفهمیم که این کدومه یعنی اگر ما عروض بیت رو آمدیم تختی کردیم به جای فاعلن در اومد زود نگیم تام بمخبوم چون چیز زود نگیم که تام مخبوم ممکنه تام بمخطوب باشه بسیط تام بمخطوب باشه چون اونم مثل قبلیه که عروزش ملاک نیست چون عروزش همیشه مخبون است خب تا اینجا و هوه ماکانت تفعیلت و عروزهی مخبونه یعنی فعیلون و تفعیلت و زربهی کذالک زربش هم همینطوره مخبونه است و تفعیلت و زربهی کذالک نمونم یعنی مخبونه پس الانی بخوای حساب بکنی، این چجور در میاد، اینطوری در میاد. مستفعلن آلن مستفعلن آلن، مستفعلن آلن فاع آلن، یعنی چهارمی میشه فاع هشتمی هم میشه فاع آلن. بعد سر جای خودشونه. مستفعلن آلن فاع مصطفعلون فا فائلون چی مصطفعلون فائلون مصطفعلون فائلون مصطفعلون فائلون مصطفعلون فا فائلون یه سوال این رو, رو آیا در این نوع یعنی این نوعی که الان میخونیم بسیط تام مخبون بیت مسرب و غیر مسرب فرض میکنه یعنی ما بهرمون این بود مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن بیت مسرع با غیر مسرع در اینجا فرقی دارد خیر فرق ندارد اصلا فرق ندارد هیچ درست است و بیت مسرع و غیر مسرع فرقی نداره نگاه کنید میگه زهاب الخلقنه فی تفعیلته علی عروض و ضرب لازم من یجري مجرد الله زحاف در اینجا جاری مجرای علت و علی الشاعر ان یلتزم بگی و شاعر لازم است بهش ملتزم بشه فی جمعی عبیات ابیات قصیدته در تمام ابیات قصیده نحو قول شاعر مثل یعنی اگر یه شاعری اومد شعر گفت گفت من میخوام بهر بسیط بگم بعدم گفت تامش میخوام بگم بعدم گفتش که من میخوام عروض و ضربش قول خودمون عروض و ضربش مخمونه باشه عروض و اون مخمونه باشه میگم خوبشکان نداره انتخاب کردی؟ پس این میشه تو مصطفی علان فایلون مصطفی علان فایلون مصطفی علان فایلون مصطفی فایلون،, مصطف فایلون این وزنت میشه اما دندت نه تا آخر قصیده باید همینو ادامه بدی عروس و ضربت باید فایلون باشد مخبونه باشد اینجا زهاف جاری مجرای علت و تو باید مجبوری که ادامه الان نگاه کنید چون گوش چون ضرب و هر هر دو مخمونه هستند و لازم هم از ادامه بدیم گفتیم که اینجا دیگه بیت مصرلح و غیر مصررف فرقی نمیکنه. لذا ایشون برای این یه مثال زده مثالش بیت مسرع نیست چرا یه دونه بیتی مثال نزد دیگه دو بیتی که یه بیت مسرع داشته باشه غیر مسرر چون نداره چون مسرع باشه چه غیر مسرع باشه اینجا هر دو زرب و عروضش به جای فایلان میشه؟ فایلان برای همین یه بیت مثال زده یه بیتیه نه با قول شاعر الا فمایستغر المال و فی یدهی و کیفتومسکو ما انقلنتل جبلی این بیت رو با هم توی بلاغت خوندیم یعنی نوعی از بیان که در این هست تشبیه است که تو جز اول یه چیزی رو نسبت میده به مشبه تو جزء دوم براش دلیل و برهان میاره با هم خوندیم میگه الا بلند مرتبه گشته است یا آقایی رو میگه مدهش دارم یعنی به همین دلیل این فای تعلیله بلند مرتبه شده است بلند مرتبه است. به همین دلیل ما یستقر رول مال قرار نمیگیرد ثروت در دستش چون بلند مرتبه هستش آدم کریم و آدم خودساخته یه مال تو دستش نمیمونه مال میاد تو دستش اما میده پس میگه بلند مرتبه است و به همین دلیل کریم است آدم بلند مرتبه نمی آدم غیر کعیمی باشد. بلند مرتبه است و به همین دلیل استقرار پیدا می کند مال در دستش. خوب اینو نسبت داد به مشبه. مشبه این آقاست. گفتش این آقا ثروت تو دستش نمی مونه. حالا دلیل می دارد. میگه و کیفه تومسک و ماهن قنه قنه قله قمه به یک معنی قله کو میگه کیف تومسک و آخه چجوری تو خودش نگه داره چجوری آب رو حفظ کند قله کو قله کو بلن مرتبه ترین نقطه است اولین جایی است که برف و باران برش میشینه از همه هم بیشتر درست شد اما شما موقعی که آب میخواید به قله کوه میرید یا ته دره ته دره اون قله کوه اون پایین رو میبینه هرچی از سهل میده پایین آب نگه نمیده یعنی چی؟ یعنی این آقا مثل قله کوه میمونه بلند مرتبه است ثروت به دست اون میرسه برف و باران اما اون رو حل میده به پایین و توی دره مردم پایین که ثروت دود مثل این دره ها دره هستش که اگر شما یه مت بکنی به آب میرسی یا اصلا خودش نهر درش جاریه تشمی کرد. این آقا رو بخون لکن الافما یستدر رول مالو فی یدهی و کیف امسکو ما جبل. حالا ببینید چجور تفتیه میکنه علا فما اون به جای مستفعلن علون اومده مفایلون اون باش ایشکال نداری اینجا اینجا تو هشبه مخمونه باش درست شد علا فما یستقف فایلون سالم است رول مالوفی مصطفی سالم است یدهی یدهی فعیلون این باید دیگه تا آخر فعیلون بشه چه عروزه و کیفتم مفایلون میتونست مصطفی بیاد بیاره مخبونه است میتونست سالمه باشه حالا مخبونه سکوما کمه فعیلون است این میتونست فعیلون باشه مثل بالایی اما الان فعیلون اومده مخمون است اینجا تو هشوه مخبونه ها اشکالی نداره جاری مجرا نیست و نترال یه بار مصرف استفاده بکنه انقنتل مصطفی علون سالم است اما نگاه کنید جبلی فعیلون این دیگه تا آخر باید انداره پس وزنش میشه مصطفحلون فاعلون مصطفحلون فاعلون مصطفحلون فاعلون مصطفحلون فاعلون اون فاعلون چهارم و فاعلون هشتم باید ادامه پیدا کنه اما اگر زهاف در جای دیگر آمد در هشبه اشکالی نداره یه بار مصرف شاهد تونسته ازش استفاده کن. این بسیت تام مخبون بود حالا بسیط تام مقطوع بسیط تام مقطوع این کدومه هو ما کانت تفعیلت و عروزهی مخبونه تفعیله عروزش مخبون است فیل خب بالایی هم بود فئل الا فی بیت المسرر اینجا بیت المسرر فعال با ضربش فعال و تفعیلت و زربهی مقتوعه زربش مقتوعه فعلان پس عروضش فعلن ضربش فعلن خب اگه بیت المسرر باشه این فهم میکنه. بیت المسرر باشه عروض باید تابع ضرب بشه اینجاست که بگید فرق کنه اونم باید بشه فعلن شد. حالا حالا اگر اگر ما بیت مصرع داشته باشیم وزنش چطور میشه خیلی ساده مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن بیت مصرع باشیم میشه فعلن مستف الون ف الون عروس الان زد غیر را باشه چطور میشه؟ مستف الون ف الون مستف مخبونه مستف الون ف الون مستف پس اگر مسرده باشه توتر میشه مستفالون، فاعلن، مستفالون، فاعلن مستفالون، فاعلن، مستفالون، فاعلن فاعلن و فاعلن چارم و هشتم. اگر قیل مسرده باشه مستفالون، فاعلن، مستفالون، فاعلن، فاعلن، چارمی مستفالون، فاعلن، مستفالون، فاعلن، هشتمی. چارمی فعلان مخبونه هشتمی فعلان مقتوعه شاده است بسیط تام مقتوع و هوا ماکان تفعیلت و عروضهی مخبونه فعلان الاف الویت المصرره و تفعیلت و ضربهی مقتوعه درست شد فعلان نه قول قوله متنبی به قول جناب آقای متنبی یکی از فرماندهان بزرگ سیف و به جنگ رفته بود و خیلی هم پیروزمندانه برگشته بود درست شد به جنگ رفته بود و رومی ها جنگیده بود و فیوم رفته بود و جنگیده بود و برگشته بود پیروزمندانه کسی که مثلا میره حج برمیگرده این نزدیکان و اینهایی که چیز هستن میرن به دیدنش تبریک میگن میرن به دیدنش خب هم که میرن به دیدنش یه چیزی میبرن با خودشون یه حدیهی برای اون اطلاع لط میکنن یه حقیه میبرد اون هم میکنه خلاصه بینه سوقاتی میده یه چیزی میده دیگه درست شد این قانون دیگه اینم هم همینطور بود یه نفری از فرماندهان ها به اسم ابوشجاع رفته بود به جنگ فیوم برگشته بود پیروزمندانه نشسته بود مردم میآمدن به دیدنش بزرگان تبریک میگفتند هدیه بهش میدادن و اونم به اونها سله میداد و احترام میشون آقای متنبی میخواد بره به دیدن این آقا خب اونهایی که میرفتن یا یه اسب خوب میمردن میدادن به این آقا ابوش و یا یه قباله مثلا باغی رو می بردن یا یک؟ چنیزی، غلامی چیزی می‌بردن، هدیه می‌دادن. می می‌بردن، می می خلاصه شمشیری می‌دادن، هدیه می‌بردن دیگه. متنبی چیزی نمی‌خواد ببره. می‌خواد بگه من یک قصیده برای تو می‌آورم، یک قصیده، سروده، یک قصیده، شعر و برای اون آقا برده و بهش هدیه کرد توان اون چی که باقی مونده این قصیده همین متنبیتون هایی که اسب و کنیز و غلام و باق و باقش دادن هیچکویمش الان نیست اما این قصیده الان هست و قصیده خیلی خوبی هم هست من و شما داریم تو عروض میخونیم توی شعرهای دیگری که من از دیوان و متنبی و غیره توی دروس و این ورور تدریس کردیم و این قصیده رو تدریس میکنم دو بیت آورده چرا دو بیت آورده؟ چون اینجا بیت مسرر با غیر مسرر بیت مسرر با غیر مسرر مجبور دو بیت بیاره بیت اولش مسرره نبا کنه لا مالو الحالو مال و حال بیت مسرر اما بیت بعدیش نیست اقوالو درست میگه لا خیل اندک تهدیها ها و لا مالو لا خیل اندک توهدی ها و مالو به خودش خطاب میکنه من باف خود متنبیه یعنی آهای متنبیه اینکه شاعر به خودش خطاب بکنه بهش میگن سنت تجرید یا تشخیص تو فارسیگاهی آقا میگن مثل سعدی آمرده نکونام نمیرد هر درست شد؟ سنت تجرید میگه لا خیل اندکت و لا مال میگه متنبی تو اسب نداری که پیش خودت هدیه بدی لا خیل انبکه تو ها تو اسبایی نداری که بیاری بدی و مالو و مال و ثروت دیگری هم نداری که بیاری هدیه کنی به خودش میگه متنبی تو که دستت خالیه مثل دیگران اسبان خوب نداری بیاری بدی مال و ثروت شمشیر و کنیز و غلام و اینها هم که باغ و باغچه نداری بیاری بدی این فن فای نتیجه بش میگن. بنابراین اد نطق ان لم توس ادل ای هادو این فلیوس اد اون لام لام امر امر قایم اد نطق ان نت یعنی نطق پس باید زبان تو به کمک تو بیاد اگر حال و عوضای تو تو رو کمک نمیکنه، اگه دستت خالی حال و عوضای خوب نیست پس زبانت باید به دادت برسه یه شعر خوب بگه اونو برداری ببری پس آقای متنبی تو که اسبان خوب و مال و منال نداری بدی بنابراین زبانت کمکت کنه به دادت برسه اگر حال و مناسب نیست و به تو کمکی نمیکنه این لا تهدی اندکت و ها ولا مالو ها ولا مالون که مالو خونده میشه این لا خیله ولا مال مثل لا و لا قوه الا بالله که تو نح میخونید که پنج شکل میشه بخونید لا حول ولا قوه یک شنبو لا حول ولا قو وتن قبل از لا حول ولا قوه ها اونجا لا حول ولا قوه الا بالله ولی از اون نحوی ولا قو میشه بخونید اینجا ولا مالن به خاطر و نظر قاعده میتونی اینجا بخونی لا خیل اندک تهدی ها ولا مالن این خب ماله بخونی شعر و رو خراب میکنم لا خیل اندک توهدی ها ولا مالو فلیوس ادن نتقو لم توس ادل حالو وجزل امیر وجزل امیر هلزی نوع ماهو فاجعتون به غیر قولن و نوع من شنگوست وجزل امیر و هدیه بده جذا بده به این امیر منظور همه ابو شجاع انلزی امیری که نعماهو فاجعتون به غیر قولن نعماه یعنی عطا عطای او نعماهو عطای او فاجعتون یک است. است. به قید قولن بدون اینکه گفته باشه یه ها میبینی چشت میاخته تو چشش دست میکنه تو جیبش یکی سو در درهم و دینار میده یه ها یه اصلی به میکنه بدون اینکه قبلا گفته میخوام به تو چیزی بدن من هوا تو دارم هیچ. پس چی میگه؟ میگه جزا بده به این امیر هدیه بده به این امیر امیری که نطف او کرمه او نعمت او ناجهانی است بدون اینکه حرفی زده باشه و نعمن ناس اقوالو در حالی که نعمن ناس نعمت بقیه مردمان غیر از این امیر هرکی دیگه که هست اقوالو حرفه حرف میزنند آقا می خواهیم به کمک کنیم، آقا می‌خوایم فلان عمل نذریم. اونها فقط صرف حرفه. این صرف عمل است بدون حرف. وجل الامیر اللذی هدیه بده به این امیری که نعمه و فاجعه به غیر قولم. عطایای او ناگهانی است بدون اینکه حرفی زده باشه. و نوع من ناسه اقوالو و حالا که لطف بقیه یه مردم بهجز حرف چیز دیگری ایست فقط حرف صرف حرف این یجزی دو مفعولیه این الامیره مفعول اولش شده کرده مفعول دومش خب بالا گفت دیگه که هدیه بود که میخواست قصیده بده یعنی وجزل امیر اللذی نعمه و فاجعتون به غیر قولن و نعمه ناس اقوالو وجزل امیره هدیهتن قصیدتن قصیده ای رو به این امیر هدیه کن امیری که حرف نمیزنه ولی عطا میکند ناگهانی در حالی که بقیه پادشاهان حرف زیاد میزنند اما تو مرحله عمل فسیسند و چیزی به انسان نمیدوند لا خیل اند مصطفی علان سالمه دکه تو فعیلان مخفون از این تو هشوه اشکالی نداره دی ها ولا مصطفی الان سالم است مالو فعلان اینجا چرا عروزش مقطوعه اومد در صورتی که عروزش باید مخبونه می آمده. ها چرا میگه چون بهتون با تابع زرم شد فلیوس ادن مصطفی فليوس ایدن نوت قو این نوت قو این فائلون لم توس ایدن مصطف حالو فائلون ضرب و عروض یه امی مصطف رل لذی فایلون فا نو ماهو فا جعتن جعتون جعتون فایلون فا اینجا عروض فایلون فا و دیگه تا آخرم فایلونه فا چون بهتون مصطفیل نیست به غیر قو مفایلون مخون از باش و عشق لن و نوع لن و نوع طائلن سالم است منناسه عق الان سالم است والو فعلن تا آخر مقطوع است چون ضرب بیتش علت قطع داره شاعر انتخاب کرده بهوزن مقطوع رو تا آخرم ادامه میده الملاحظ فی فیازه البیتین، البیت که شما تو این دوتا بیت میبینید اینه ان تفعیلت از زرب جاعت تفعیله زربش مقتوعه اومد بله خود شاعر انتخاب کرد و شاعر رو مل زمان به ها به این متعهده و باید زامد خودش انتخاب کرده که فعلان بگه زربش فعلان تا آخر و ان زهاف الخبن قد دخل علا بعض تفیلات ما و میبینی که زحاف خبن خبنم به تفعیلاتش داخل شد خب باشه زحاف خبن داخل شد اما یه جا هستش که اون زحاف خبن که داخل شده اونجا لازمه اون کجاست تو عروزه تو عروز باید زحاف خبن ادامه پیدا بکنه جاری مجرد علمته الا ان دخوله علی تفعیلتالعروضه واجبون و شاعر باید بهش باشه هر کجا خبن داخل شده باشه غیر از عروض در عروض اگر داخل شد اونجا لازم شاعر ادامه بده و واجبم هست آمده و ادامه بده بود حالا میگه بچه چرا اگر واجبه تو عروض زهاف قبل داخل شده تو بیت اول داخل نشد جواب میده چون بیت اول بیت مسرع بود و عروزش تابه ضربه شد و سبب و فیادم دخول هی علا تفعیلت الاروزه فی بیت الاروزه خب و کونهو مسرع. این بوده که این بیت بیت مسرع بوده و در بیت مسرع عروز تابه زرد. و سبب و فی عدم دخوله یعنی تفعیلت العروزه البيت العووله و وکونهو مسرن و عروز تا به اينم این هم قسم دوم اما بیایم قسم بسیط مجزوع رو بخوانیم چون ساده است که بهش مخلق البسیط اولا مجزوعه یعنی یه جزء از س یه از جو حذف شده یعنی مستف الان فائلون مستف این فون حذف مستف الان فون مستف این فیلون هم هست یعنی شده مستف ال فون مستف ال مستف ال فائل مست یا مخلول وسیتی نه و خبه اهد و مجزوعات البسیط شاید یکی از اقسام مجزوعات بهر بسیطه که خیلی هم شویو داره چون شویو داره میتونمش فقط وزفت تفعیلت و فاعلان اخیره من مصرآه هست شده تفعیله فاعلانی که آخر بوده چارمی و هشتمی از هر دو مصرآ فعص بهت تفعیلت و عروزهی و ضربهی مستفعلن الان عروزش و ضربش هر دو مستفعلن مصطفال مستفعل. ثم لحقت ها علت القطع بعد علت قطع بهش داخل شده به مصطفالون فعصفهت مصطفال مصطفال که ما مصطفال نداریم گفته میشه فعولون ثم دخلها ها الخبن بعد زهاف خبن بخش تاخل شد خبن چی بود؟ دومین حرف رو هست میکرد میشه فعولان زهاف الخبن فسارت فعولان درست شد پایین نگاه کنید میگه ذهاب خبن در اینجا جاری مجرای علت یعنی شاعر واجبه که بهش مقید بشه فسارت فعولان فعلها ذا فعل التفعيلتي عروضه و ضربه تكونان مقطوعتين مخبونتين ببینید سه تا تفعیل اینو بعدو سه تا تفعیل اون بعد ساده است مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن ما کارمون توی این مستفعلن هاست ثام و مستافعلونه بگید ششم. یعنی عروز و زب. اینها اول میشن به صلاح مقتوعه مستافعلون اول میشه مقتوعه گفتیم اون وتد مجموع تبدیل میشه به یه سبب خفیف. مستفعلن میشه مفقولان. ولی مفعولون نمیماند. مفعولان هم بهش ذحاف خبن داخل میشه میشه فعولان حالا اگه مستفعلن شد فعولان چه اتفاقی توش افتاده؟ اول شده شد بعد شده بگید مخبونه اول شده مغتوعه شده مفعولان بعد شده مخبونه شده فعولان هم عروزش هم ضربش میشه به جای مستفعلن فاعلن و این فاعلن رو ما بهش میگیم چی, چی؟ بهش میگیم مقتوعه مخبونه هم توی عروس هم توی زن یعنی خلاصش اینه مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن اون مستفعلن سوم و ششم جاش میشه فعولان یعنی مخلول البسید وزنش اینه مصطف الان فایلون فاولون مصطف الان فایلون فاولون این فاولون فاولون که تو سوام و شی شمه مقتوعه مخمون است مقتوعه مخمون است و خوبه احد و مجزوغات البسیط از شائعت فقط حذف تفعیلت و فایلون الاخیلت و مرمس را به فعصفهت تفعیلت و عروزهی و ضربهی مصطفالون ثم لحقت ها بد به این مصطفالون لاحق شده علت قد فعصفهت مستفعل یعنی مفعولان ثم دخل ها زهاب که لازم هم هست بروش شد فسارت فعولان فعلا هازا فعن تفعیلت عروزهی و ضربهی تکونان مقطوعتین مخونتین یعنی فعولان درس شو کما یلی الان نیگاه کنید مستفعل فاعل فعولان این فعولان مستفعلان بوده مستفعلان شده مفعولان بعد مفعولان شده فعولان مستفعلن فائل فعولان این فعولان م مستفعلان بوده بعد شده مفعولان یعنی مبطوعه بعد شده فعولان یعنی مخبونه نه و قول شاعر مثل قول این شاید و کل زی غیبتن یعوبو و قائب الموت لا یعوبو یعوبو و لا یعوبو با هم تباق دارن تباق اگه بین دوتا فعل باشه یکی مثبت یکی منفی بهش میگن تباق سلب و این دوتا با هم تباق دارن درست شد سنت تباق یه یعوبا آخر بیت اومده اون یعوبا در آخر مصره اول هم تکرار شده کلمه ای که آخر بیت اومده اگه در اول بیت یعنی جای وکل یا در وسط جای زیغی وطن یا در همین جایی که الان هست یعوبا یا در اول بیت مثل دوم همان جای وقائب در هر کجای این رسمت ها اون کلمه آخر تکرار بشه بهش میگن رد دوله اجازه الاسدر رد دوله اجازه این که از محسنات بدی است سرطه شعر با هم جمع کرد حالا اینو گفتم که خستگیتون در بره و یه طباق سلم اینجا داریم میبینیم و یه دونم رد دلچ حالا معنا کنیم شعر میگه و کل زی زیغیبتن یا او بود هر قایبی برمیکرد موسفه گنگشته باز آید بکنم هر کسی رفته قایبه هر قایب از نظری روزی خواهد آمد ما هم منتظر قایب از نظر خودمان که امروز روز ولایت اوست و خدمت شما هم تبریک میگم روز آغاز ولایت مولای ما حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه و کل ذی غیبته یعوق هر قایبی روزی خواهد آمد و قایب الموت لا یهوب شعرش مرسیه بوده اما اونی که مرگ قایبش کرده قایب مرگ لا یهوب اون دیگه اینجا دیده نمیشه اون برگشتنی نیست اونی که مرگ برد بر نمی کرد الموت لا یهوب حالا نگاه کنید و کل و فایلون مخمونات باشه این عرضشی نداره بتن فایلون سالم است. یعقوب فعالان، این مقتوعه مخبون است. مقتوعه مخون است. واقع ابول مفاعلان، موتلا این مفاعلان ارزشی ندارهشون تو عشته، موتلا فعالان سالم است. یعقوب فعالان مقتوعه مخون است. اینجا باید مسخره باشند نباشند، وارگن میکنند دیدید که بایدش باید مسخره بود و هیچ فرقی نکرد. خلاصه بحر وسیت، خلاصه تو بحر الوسیت. یاتیازال بهرو تمام هشتایی، مصطفی آلن فائلن، مصطفی آلن فائلن، مصطفی آلن فائلن، مصطفی آلن فائلن و ماجزو، مصطفی آلن فائلن، مصطفی آلن، مصطفی آلن فائلن، مصطفی آلن فائلن و تفعیلت عروض هیف تامه مخبونه دائما عروزش دائما مخبون است چون یعنی به جای فاعلان هست فعل الا فی بیت المسرب مگر در بیت مسرب که عروض تابع ضرب اما ضرب فقط یعنی مخبون و ضربش جای مخبون مخبونه است یعنی فعل میشه بسیط تام مخبوم و قدیتی مقتوع فعلان میشه بسیط تام مقتوع و زحاف الخب نیت خلالا تفعیلاته زحاف به خب تفعیلاتش داخل میشه و علت القد و زحاف الخب نیت خلالا تفعیلته عروز المجزون علت فت و زهاف خب با هم داخل میشن بر دو تفعیله عروض مجزور و ضربش یعنی داخل میشن این دوتا بر مصطفالان سوم و اونو میکنن فعولان همین چیز که ادام خود و زحاف الخبن و تیه یدخولان الان تفعیلاته و زحاف خبن و زهاف تی داخل میشن بر تفعیلاتش زحاف خبن و زحاف تی داخل میشن بر تفعیلاتش زحاف خبن و ما با هم خوندیم که مصطف علون شد مفاعل اما زحاف تی رو به ما گفت ولی مثال نست یاد شاء الله تعالی اول جلسه بعد که برسیم من اون زحاف تی هم تو یه دونه بهتون نشون میدم و با هم زحاف تی رو میبینیم یه بیت رو میگم نگاه کنید تو خود کتاب نگاه میکنید تختیش میکنیم نبینید توش زحاف تی هستش و زحاف تی رو هم میبینید و درس شما برای اول جلسه بعد یه مقدار تکرار میشه بعد انشاءالله بعدش بحر وافر رو در خدمت شما هستیم و خواهیم خوند همه شما رو به خداوند صبحان می سپرم که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید از هر گونه استرس و استرا و دلشوره هم به باشید و من یک وکل علالله فهوه هر کسی توکل رو به خدا بکنه با خدا مرتبط باشه خدا او رو کافی است و از هر گونه آرامشی هم که باشه برخوردار کشه علا به ذکر الله تطمئه الله ان انشاء الله که در پناه خداوند موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته